امروز خوبم به دانشکده کوچک کتاب مقدس خوش اومدیم ضمن بررسی کتاب مقدس به کتاب اعمال رسولان، پنجمین کتاب از عهد جدید رسیدیم و در این کتاب با مردی ملاقات می کنیم که نیمی از عهد جدید رو نوشته. من همیشه از شنیدن ها و تجربیات مردم لذت میبرم که چطور با عیسی مسیح آشنا شدن و چی شد که به عیسی مسیح ایمان آوردند ما امروز زمینی که زندگی و خدمات پولس را بررسی می‌کنیم به یکی از مهیج‌ترین ها در عهد جدید گوش خواهیم کرد با هم به درس امروز معلممون گوش می‌کنیم ما با شاول به این شکل در باب نهم از کتاب اعمال رسولان آشنا میشیم. اعمال باب نه آیات یک تا شش این کلمات آشنا رو درباره تبدیل شاول ترسوسی و یا تجربه‌ی دمشقی او رو بیان میکنه. ما نمیتونیم این مرد رو جدای از کلمه تجربه بفهمیم. وقتی شعال رو در انتهای باب هفت و ابتدای باب هشت دیدیم و وقتی او رو در ابتدای باب نه می بینیم او بزرگترین دشمن مسیح است. او از مسیح خیلی نفرت داره اینجا پولس به ما میگه که یه تجربه داره. تجربهش هم همون تجربه راه دمشقه و این تجربه تغییر بزرگی در زندگیش به وجود میاره حاصل این تجربه است که زندگیش رو عوض میکنه و برای همینه که میگم بدون کلمه تجربه این مرد رو نمیشه درد کرد جاهای زیادی در کتاب اعمال هست که در اونها پولس به ما از تجربیات خودش میگه در یک جا در کتاب اعمال نوشته شده که یک بار یک جمعیت خشمگین و عصبانی میخوان به پولس حمله کنن و او را بکشن سربازها مجبور میشند که برن وسط این جمعیت خشمگی پولوس که اتفاقا قدش هم کوتاه است به وسیله سربازا بلند میشه و به داخل قصر برده میشه و اونجا زندانی میشه پولوس این جماعت رو می بینه و از اونجا که یک مبشر بزرگه از این موقعیت برای بشارت استفاده میکنه او به فرمانده سربازها التماس میکنه که پایینش بیارن تا به اون جماعت بشارت بده قلب معزه پولوس اینه که مردم من یه تجربه داشتم او میگه من داشتم میرفتم سوریه و خیلی هم برای دستگیری و قتل شاگردان مسیح قیور بودم داشتم میرفتم دمشق تا بعضی هاشون رو دستگیر کنم نیمروز توی راه یه نور بزرگ بر من تابید و منو به زمین انداخت صدایی رو شنیدم که میگفت شاول، شاول چرا بر من جفا میکنی؟ پولوس همینطور از تجربه ای که در حضور حاکمان و پادشاهان داشته حرف میزنه اصلا براش مهم نیست که کی اونجا هست و چیزی که براش مهمه اینه که از تجربهش صحبت کنه برای پولس زندگیش جدای از تجربهش اش چند مطلب در کتاب اعمال هست که باید به اونها بپردازیم مثلا در باب 9 پولس یه صدایی میشنوه که او رو صدا میزنه و میگه چرا داری به من جفا می کنی؟ اینجاست که میفهمیم. چرا بهترین عنوان برای این کتاب میتونه اعمال مسیح قیام کرده باشه هر کاری که در این کتاب میبینیم کلیسا انجام میده در واقع اعمال مسیح برخواسته از مردگان هست که از طریق این کلیسا داره انجام میشه نکته جالب اینه اتهامی که مسیح به پولس میزنه اینه که چرا داری بر من جفا میکنی در واقع وقتی داری کلیسای منو آزار میدی مثل این هست که منو آزار میدی شاول با ترس میپرسه تو کی هستی و باز خودش جواب خودش رو میده و میگه خداوند دا. او حتی نمیدونست که با کی داره صحبت میکنه ولی میگه خداوند میگه خداوند تو کیستی در تبدیل پولس رسول ما میتونیم به وضوح مفهوم فروتنی رو ببینیم کلمه فروتنی یکی از کلماتی هست که بد فهمیده شده فروتنی ضعف نیست بلکه فروتنی یعنی رام شدن وقتی یه اسب وحشی داشته باشیم که هیچ وقت بهش لگام نزده باشیم یا زین روش نانداخته باشیم این اسب باید رام بشه و بعد از اون زمانی خواهد رسید که این اسب رام میشه و دیگه نافرمانی نمیکنه چیزی که مسلمه اینه که این حیوان ضعیف نشده بلکه فروتن شده و معنی فروتن شدن دقیقا همینه. وقتی مسیح قیام کرده از پولس میپرسه چرا داری لگد میزنی؟ چرا داری لگامتو میکشی؟ به این دلیل که وقتی اسبی لگام خودشو میکشه و این برای اسب خیلی دردناکه. این دقیقا همون سوالی هست که مسیح از شغل میپرسه. این تمثیل نشون میده که روحالقدس القدس از قبل داشته در قلب شاول کار میکرده. وقتی شاول داشت از لباسهای افرادی که میخواستن استیفان رو سنگسار کنند مراقبت می خداوند روحالقدس القدس کار عمیق خودش رو در قلب شاول آغاز میکنه. برای همین، در آیه بعدی در یکی از ترجمه‌ها ها میگه او مثل یک فرد وحشی رفتار می‌کرد میکرد و کلیسا رو تحت فشار قرار میداد و بیشک خداوند داره او را ملزم میکنه. معمولا ما به چیزی حمله میکنیم که ازش میترسیم. اگر کسی هیچ علاقه ای به امور روحانی نداشته باشه اون شخص کاملا بیتفاوت خواهد بود. بعضی وقتها شخصی که داره افراد روحانی را رو آزار میده شاید از چیزی که زندگی او را هدایت میکنه و در او کار میکنه کنه می ترسه روح القدس از طریق استیفان و سایر مؤمنین داره با پولس صحبت میکنه. برای همینه که مسیح میپرسه چرا داری لگت میزنی؟ چرا لگام خودتو نمی چرا یوغ منو به گردن نمیگیری؟ وقتی شاول می پرسه چیکار باید بکنم این پرسش خوبی هست؟ آیا شما هم تا به حال اینو از خدا پرسیدی همین شاول ترسوسی در آینده رسالات زیبایی می نویسه که نیمی از کتاب مقدس عهد جدید رو تشکیل میده همونطور که گفتیم کتاب اعمال مثل یک حلقه بین اناجیل و رسالات عمل میکنه به ویژه این بخش از کتاب عمل که داریم مطالعه میکنیم و الا وقتی به رسالاتی چون رومیان و گلاطیان و یا افسوسیان میرسیدیم شگفت زده میشدیم که این پولس کیه؟ و این افرادی که او براشون نامه می نویسه چه کسانی هستند. ولی اینجا ما حلقه مفقوده رو در داستان تبدیل پولس می بینیم. وقتی که پولوس داره رسالاتشو می نویسه، رسالاتی چون رومیان، قلاتیان، بیش از همه به ما درباره نجاتی که خداوند در عیسی مسیح برای ما انجام داد می نویسه. او به ما می گه که چگونه به وسیله فیض و ایمان نجات یافتیم. ایمانی که خدا به ما میده و نه به وسیله اعمال خودمون او با ما درباره هدیه‌ای که در جایهای آسمانی در مسیح داریم صحبت میکنه وقتی که مسیح قیام کرده رو میبینه نمیگه خب عیسی اینا چه فایده‌ای برای من داره تو برای من چی کار خواهی کرد حالا که ملاقات کردیم چی میشه؟ برای پولس مسئله مهم این نیست برای او از حالا به بعد نکته مهم اینه خداوندا، تو میخوای من برات چیکار کنم اراده تو چیه وقتی کتاب ایوب رو خوندیم درباره مسیحیانی صحبت کردیم که حسابگر هستند منفعت طلبند درباره ایمانداران منفعت طلب حرف زدیم و گفتیم بعضی از ایمانداران حسابگر هستند ایمانشون بر مبنای نفع خودشونه شاید خودشون ندونن اما اینطور افراد از خدا به عنوان یه وسیله رفاهی مثل آب و برق یا اتوبوس استفاده می‌کنه ما به این چیزها گیم امکانات رفاهی چرا که ازشون استفاده کنیم ولی هیچ وقت شه از خدا به عنوان یک وسیله استفاده کرد خیلی از ما وقتی خواهیم آتیش رو خاموش کنیم یا وقتی می‌ترسیم اسم خدا رو فریاد میزنیم پس خدا میشه کسی که هر وقت مشکل داریم یا نیازی داریم به سراغش میریم و به این ترتیب ما مرکز این رابطه میشی وقتی کتاب ایوب رو بررسی می کردیم دیدیم که ایوب به زنش میگه مثل زنان ابله حرف نزن انتظار داری همیشه چیزهای نیکو از دستان خدا دریافت کنی چون فکر می کنی که پارسا هستی یادتونه که ایوب پس از اون همه رنج و تجربیات تلخ الیهو بهش میگه داری سؤال اشتباه می پرسی نباید دستاتو باز کنی و در این رابطه به خدا بگی چون من آدم خوبیم حالا چی میذاری توی دستام؟ یعنی به من چی میدی؟ بلکه در عوض باید دست باز خداوند رو در مرکز این رابطه گذاشت. در هر تجربه‌ای باید همیشه این سؤال پرسی. خداوندا، این وضعیت برای تو چی میتونه داشته باشه؟ ارادت چیه؟ چطور میشه به وسیله این موقعیت یا مشکل تو رو جلال داد؟ افرادی هستند که معمولاً از طریقه علم روانشناسی دین گاهی به ایمان مؤمنین حمله می و اونا رو متهم می که اونها به خاطر نیازشونه که به دنبال دین می گاهی اوقات روانشناسی دین میگه دین افیون توده هاست. متدینین به سپری در برابر مشکلات نیاز دارن و دین این رو براشون مهیا کنه. حالا اگر کسانی شما رو به این متهم کنن فکر می کنید نشانه هایی در شما هست که بتونن چنین چیزی رو ثابت کنن آیا شما چنین شخصی هستید هولوس به ما نشون میده که این حقیقت نداره امکان داره شخصی مسیح بخشنده رو ملاقات کرده و او دیگه به خاطر این بخشش عذاب وجدان و احساس گناه نداره شما تمام آین ها و رسوم رو انجام میدین بدون اینکه بدونین چرا خدا مشکلاتتون رو حل کرده و برای همینه که در کلیسا هستی شاید محتاج شفا بودید و شفا گرفتی و همه ایمان شما در این خلاصه میشه شما فقط کلیسا میرید چون که شفا گرفتی یا شاید هم عیسی مشکل روانی شما را رو حل کرده و شاید او مشکل شخصیتون را حل کرده بله مسیح میتونه مشکلات احساسی و روحی شما را رو حل کنه شاید هم میخواهید از موقعیت که مسیح میده استفاده کنید شاید هم به یه باشگاه اجتماعی نیاز دارید شاید تو خونه با بقیه نمیسازید و میایید کلیسا شایدم می هم متعلق به جایی باشید و همه اینها شما رو در مرکز رابطتون با خدا قرار میده این, نزد... این درسته که زمانی که به نزد مسیح میایم و نجات رو تجربه میکنیم او به ما آرامش میده مشکلات ما رو حل میکنه بله مسیح به ما جایی برای متعلق بودن میده مشکل عذاب وجدان ما رو حل میکنه و اگه اراده بکنه میتونه شما رو شفا بده. میتونه مشکلات روحی شما رو حل کنه و میشه این رو در زندگی پولس به وضوح دید. و اما پاسخ به حملات روانشناسان دین رو میشه در زندگی شاول ترزوسی دید. در ابتدای تجربه نجات بخش شاول برای او مهم اراده خدا هست. اینه که من برای تو چی کار میتونم انجام بدم؟ او نمیگه خدایا من دستم دراز میکنم و میخوام ببینم تو؟ چی توی دست من میذاری؟ نه، این اون چیزی نیست که پولس میخواد از همون ابتدا پولس میگه خداوندا، اراده تو چیه؟ من چه چیزی میتونم در دستان تو قرار بدم؟ و این رو میشه از اول تبدیل شاول تا به آخر دید. من میخوام شما رو به چالش بکشم. آیا شما دارید مسیح رو پیروی میکنید تا در دستانش چیزی بذارید یا اینکه او دستان شما رو پر کنه؟ یعنی آیا می‌خواهید اراده مسیح رو به انجام برسونید و یا او اراده شما رو تبدیل یعنی سر و ته شدن یا اگه بخوام الهیاتیشو بگم یعنی برعکس متولد شدن وقتی پولس در راه دمشق تبدیل شد زندگیش عوض شد زندگیش متحول شد یکی از چیزهایی که عوض شد اسمش بود اسم او یعنی شاول به معنی عظیم و قوی بود ولی پس از تبدیل شدن او از اسم رومیش استفاده میکنه که به معنی کوچک یا هیچکسه یا یه صفر تو خالی وقتی شاول پولوس شد او طی تجربه‌ای دریافت که فقیر بودن در روح یعنی چی من سال‌هاست که در کلیساهای غیر مذهبی شبانی می‌کنم وقتی پسر بزرگم خیلی کوچک بود یه روز داشت توی حیات با دوستانش بازی می‌کرد بهار بود و پنجره هم باز بود یکی از دوستانش از او پرسید مامانم خواسته ازت بپرسم اگه کسی باپتیست باشه میره کلیسای باپتیست اگه متودیست باشه میره به کلیسای متودیست اگه کاتولیک باشه به کلیسای کاتولیک میره حالا اگر کسی بره کلیسای پدرت اون وقت اون شخص چیه من گوش میکردم ببینم پسرم چه پاسخی میده او گفت اگه بری کلیسای پدرم اون وقت هیچ چی نیستی در کتاب مقدس وقتی مردانی چون شاول ترسوسی خدا رو تجربه میکنند، وقتی از اون تجربه بیرون میان میگن ما هیچ نیستیم دنبال کلمه می گردن تا شاید جلال خدا را توضیح بدن و نمیتونن تونن کلمه ای پیدا کنند. تا گناهکار بودن و کوچک بودنشون رو توضیح بدن. پیش از تبدیل پولس عظیم بود. برای خودش کسی بود. پس از تبدیل شدن کوچک شد. شد هیچکس. این یعنی فروتنی. این یعنی خوشابهال فروتنان. این یکی از سمرات تبدیل هست. پولس یک مرد مغرور بود. او از نظر خدا وارونه بود. سروته بود ولی وقتی درست شد تبدیل شد به یک شخص فروتن و این همان پولسی میشه که میشناسیم و به ثمرات تجربه شخصیش که الهام گرفته از ملاقاتش با مسیح قیام کرده در راه دمشق می میرسیم در مطالعه کتاب اعمال ما به دنبال الگوهای پنتیکاست هستیم یکی از الگوهای پنتیکاست پنتیکاستی شخصی هست به خاطر پنتیکاست در اعمال میخونیم خونیم که در روز پنتیکاست افراد زیادی تجربه ای مثل پولس رو دارن یعنی پنتیکاست شخصی از نظر من خبر خوش اینه که شما هم میتونید یه پنتیکاست شخصی داشته باشید. میشه هر کسی یه پنتیکاست شخصی داشته باشه و اونو تجربه کنه برای من ممکنه برای شما هم ممکنه که چنین تجربه رو داشته باشیم. البته این به اون معنا نیست که همه همون تجربه پولس رو خواهیم داشت. اگر من پنتیکاست شخصی خودمو و شما پنتیکاست شخصی خودتونو داشته باشین، من تجربه ای که خدا اراده میکنه خواهم داشت و شما هم تجربه ای خواهید داشت که خدا براتون اراده میکنه. و اینها یک چیز مثل هم نخواهند بود. هم در عهد عتیق و هم در عهد جدید مردان و زنان خدا پنتیکاست‌های شخصی داره. این حتی در عهد عتیق پیش از اعمال دو هم اتفاق میفته و در عهد جدید بعد از اعمال دو هم اتفاق میفته. وقتی قوم خدا خدا رو تجربه میکنند یا پندیکاست شخصی دارند نکته مهم اینه که جزئیات تجربهشون مهم نیست جزئیات از موردی به مورد دیگه فرق میکنه نکته اصلی نتیجه این تجربیاته. اگه به کتاب مقدس مراجعه کنیم جزئیات تجربه کردن خدا گوناگونه یعقوب سرتاسر سر شب رو با یک فرشته کشتی میگیره که رانش رو میشکنه ایوب با خدا در یک گردباد حرف میزنه پولس نور عظیمی میبینه که نقش بر زمینش میکنه اشعیا داره هیکل خدا رو پرستش میکنه ولی مثل اینه که زلزله شده و تمام معبد خراب میشه اشعیا میگه که او پادشاه رو دیده که بالای مذبح ایستاده بعد از این تجربه است که اشعیا به عنوان نبی مبشر فرستاده میشه و مثالهای دیگه وقتی همه اینها رو میبینیم میفهمیم که کتاب مقدس تجربه رو تعلیم میده. برای بعضی تجربه بیمعنیه. من شخصاً به تجربه باور دارم. البته بستگی به نتیجه داره. مسیح فرموده خداوند روح است و اونهایی که او رو میپرستن باید خدا رو در بود روحانی بپرستند من در سال 1961 یک پنتیکاست شخصی داشتم. اون تجربه نقطه آغاز زندگی روحانی من بود همه ما باید یک نقطه آغاز زندگی روحانی داشته باشید نقطه آغاز زندگی روحانی من زمانی بود که یه پنتیکاست شخصی داشتم بعضی از دوستان قدیمی تر و روحانی در اون دوران به من مشاوره می دادن یادم یه مرد خدا به هم می گفت درباره تجربیات شخصی خودت با همه صحبت نکن اون وقت اونها هم میخوان تجربه تو رو تکرار کنن و نمیتونند و لغزش میخورند وقتی درباره تجربیاتتون حرف میزنید مثل اینه که وسط یک کبیر هستید و یک دفعه آبی پیدا میکنید تو شیرجه میزنید و اونو به سر و صورتتون میپاشید و میگید آه چقدر خوبه که آدم توی این آب زلال باشه وقتی اطرافتون پر از افرادی که دارن برای یک جرعه آب از تشنگی تلف میشن این کار ظالمانیه اگه میخواید بقیه هم همین تجربه رو داشته باشن باید بهشون راه رسیدن به آب رو نشون بدی. باید اصولی رو که منتهی به داشتن یک تجربه شخصی با خدا میشه به اونها تعلیم بدی. من از زمان تبدیلم تا به امروز دارم این کار رو انجام میدم. سعی میکنم اصولی رو که برای داشتن تجربه شخصی با خدا لازمه به مردم یاد بدم. پرسش پولوسینه: خداوند خداوندا اراده تو چیه؟ چیکار میخوای برات انجام بدم؟ با تاکید کردن بر روی یک کلمه در هر جمله میشه منظوری رو که می‌خوایم ازش برداشت بشه نشون بدیم. مثلا میشه گفت با او مهربان باش تاکید بر روی مهربانه یا میشه گفت با او مهربان باش با تاکید بر او بسته به اینکه تاکید کجا باشه جمله میتونه پیام متفاوتی به ما بده حالا اگه همین کار رو با پرسش پولوس هم انجام بدیم و هر بار تاکید رو روی یه واژه بذاریم میتونیم معانی مختلفی رو ازش بگیریم مثلا اولین تاکید در خدایا تو میخوای برات چیکار چی کار کنم می بر روی تو باشه. همه ما وسوسه میشیم که می خواهیم اراده سایرین رو انجام بدیم. مثلا شوهر یا زن یا پدر و مادر یا بچه ها و دوستانمون یا رئیسمون. ما همیشه در حال برآوردن خواسته های افراد و اراده اونها هستیم. اینجا نکته مهم و تاکید اینه که ما اول باید اراده خدا رو انجام بدیم. باید بپرسیم خدایا تو میخوای من چی کار کنم؟ این جای مهمی برای تأکید کردن در سوال شعال هست. بعد میشه روی کلمه کنم تأکید کرد. با تأکید بر روی کنم میبینیم کتاب مقدس چقدر درباره انجام اعمال صحبت میکنه. البته پولس به ما میگه که با اعمال نجات نمییابیم. اگر با اعمالمون نجات مییافتیم چطور میفهمیدیم که اونها کافی هستند؟ اگر با اعمال خودمون نجات پیدا می کردیم از ایسا برای چی بر روی صلیب رفت خدا فدیه گناهان ما رو بر صلیب ایسای مسیح داد زمانی که میگیم با اعمال خوبمون نجات پیدا می کنیم، داریم به خدا میگیم مرسی ولی من به کاری که پسرت بر روی صلیب انجام داد احتیاج ندارم. تو او رو به صلیب فرستادی ولی واقعا لازم نبود چرا که تمام کاری رو که او کرد من با کار خودم میتونم انجام بدم البته کتاب مقدس درباره کار خوب حرفای زیادی داره. اعمال خوب ما نتیجه ایمان ما هستند. وقتی ایماندار میشیم، کلی کار برای انجام دادن داریم. جای دیگه برای تاکید میتونه این باشه که خداوند میخواد من چیکار کنم. با تاکید بر روی من به یاد میاریم چطور پتروس که به خودش بالید که حاضر برای عیسی بمیره، او رو سه بار انکار میکنه. بعد در اواخر انجیل یوحنا ایسا به پتروس میگه که چگونه خواهد مرد میگه ایسا دستشو حلقه میکنه دور پتروس و میگه پتروس تو برای من مسلوب خواهی شد. اونم وارونه پتروس پس از شنیدن این حرف به یوحنا اشاره میکنه و میگه خداوندا پس اون چی؟ یادمون باشه که یوحنا شریک ماهیگیری پتروس در شرکت ماهیگیری زبدی بود پتروس میگه پس برادر و شریکم چی؟ مسیح میگه به تو مربوط نیست تو به دنبال من بیا پولس هم از همون اول میفهمه داستان چیه برای همین هم میگه آخه خداوندا نقشت چیه این سؤالیه که همه ما باید بپرسی جای دیگری که میشه تأکید رو گذاشت بر روی کلمه چه هست خداوندا چه کاری برات انجام بدم پولس به اراده خوب مقبول و کامل خدا در زندگی هر ایماندار معتقد بود خدا برای هر ایماندار به مسیح برنامه ای داره. در افسوسیان باب شش آیات شش تا هش میگه به وسیله کارهای نیک نجات پیدا نمی کنی. اما در آیه ده میگه برای انجام اعمال نیک نجات پیدا کردید. همینطور افسوسیان دوده بر مبنای همین تبدیلش که پولس میگه سر و ته شده بود هرگاه در اعمال میبینیم پولس مععزه میکنه همونطور هم میبینیم که چطور شهادتشو میده. به ویژه در رساله فیلیپیان در باب سه میگه وقتی مسیح عیسی رو ملاقات کردم مثل این بود که او تمام ارزش‌های مرا گرفت و سر و ته کرد. اون چیزهایی که پولس ارزش می‌دونست براش بی‌ارزش شدن. مسیح ارزش‌های مرا عوض کرد. پولس میگه دنبال چیزهایی بودم که برام با معنی بودن ولی پس از ملاقات با مسیح اونها برام بی‌معنی شدن. هر چیزی که در ستون بدهکاران بود به ستون بستانکاران منتقل شد. و هر چیزی که در ستون کاران بود به ستون بدهکاران منتقل شد او میگه چیزهایی بودند که من دنبالشون میرفتم اما بعد از اینکه با عیسی ملاقات کردم دیگه اون چیزها برام کوچکترین ارزشی نداشته میگه همه این چیزها رو فضلش مردم چیزهایی مثل شناخت مسیح و درک اراده او که قبلا برام مهم نبودن برام اهمیت پیدا کردن و مهمترین و با ترین. اهداف زندگیم شدند. یک جمله کوچک در فیلیپیان سه هست که میگه من نمیگویم که قبلا این را به دست آورده هم و یا به کمال رسیده هم بلکه آن را دنبال میکنم تا به چنگ آورم همانطور که مسیح نیز مرا به خاطر آن به چنگ آورده است یعنی دنبال اهداف باشکوه مسیح هستم و اونها را به چنگ خواهم آورد از زمانی که عیسی را در راه دمشق دیدم تنها چیز مهم برای من فهم اراده خدا بود پولس همینطور از کلمات و اصطلاحات ورزشی استفاده میکنه شایدم یه زمانی ورزشکار بوده قطعا با کشتی و بکس و میدانی آشنا بود در زمان پولس وقتی دو نفر کشتی میگرفتند یکی از دو حریف اون یکی رو به خاک میزد اگه کسی شما رو به خاک زده باشه میدونید این چه حسی داره مسیح همین کار رو با پولس کرد پولس میگه مسیح همین کار رو با من کرد مسیح او رو به خاک زد و از اون به بعد مسیح بر او غالب شد. تنها مسئله برای او مسیح و شناخت مسیح بود. او میگه از اون به بعد دنبال این بودم اهدافی رو به خاک بزنم که به خاطر اونها خاک شده بودم. در نیمه دوم کتاب اعمال رسولان باب نه خداوند سراغ یه شاگرد در دمشق به اسم هنانیا میره و به او میگه برو و شاول ترسوسی رو تعمید بده. وقتی خدا به هنانیا دستور میده بره و شاول رو تعمید بده، البته او مقاومت میکنه. چرا؟ چون شاول ترسوسی مسیحیان رو دستگیر میکرد و به اونها آزار میرسوند و اونها رو تسلیم جوخه های مرگ میکرد. برای اینکه هنانیا امتنا نکنه و اطاعت کنه، خداوند نقشه زندگی پولس رو به او آشکار میکنه. خداوند در رویا به او ظاهر میشه و میفرماید ای هنانیا، او پاسخ میده بله ای خداوند آماده خداوند فرمود برخیز و به کوچه ای که آن را راست مینامند برو و در خانه یهودا سراغ شخصی به نام شعول ترسوسی را بگیر او به دعا مشغول هست و در رویا مردی را دیده است به نام هنانیا که میآید و بر او دست میگذارد و بینایی او را باز میگرداند هنانیا عرض کرد خداوند درباره این شخص و آن همه آزار که او به قوم تو در اورشلیم رسانیده است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 متحمل خواهد شد. خداوند کل نقشه رو برای هنانی آشکار کرد. اما تنها چیزی که به شاول ترسوسی نشان داد این بود که به او گفت: برخیز و به شهر برو و در آنجا به تو گفته خواهد شد که چه باید بکنی. یکی از مهیج ترین در کتاب مقدس تبدیل شدن شاول ترسوسی است. اراده خدا برای شاول ترسوسی یکی از زیباترین داستان های کتاب مقدس است. در دل این تجربه تبدیل این سؤال مهم جا داره. خداوندا تو میخوای که من چیکار کنم؟ امیدوارم که شما هم به عیسی این رو گفته باشید و اگر نگفتید شاید امروز زمانی هست که باید از او بپرسید. خداوندا تو می خواهی که من برای تو چیکار کنم؟ عزیزان چه شهادت عظیمی چه واکنش عظیمی و عجب سرمشقی برای من و شما اگه تو حالا نگفتید خداوند رو از من میخوای چی چیکار کنم؟ ما اینه که این درس ها شما رو راهنمایی کنه که خداوند رو بهتر بشناسید تا بتونید صدای اون رو به واضح بشنوید و اون رو وفادارانه پیروی کنید. تا برنامه بعدی امیدوارم فیض و سلامتی اون بر شما و خانواده‌تون قرار بگیره.